در صدقه دائمه تعالی دارت اللهم احشان و جمعی از هم و رحمه و رحمتی که آشمن باشی همسو که در وقت گزجه خرم و واحد در ما بلکه در در میایی اسلام پساب میشی در معارفی دینی همسو کنیم افتباقا متعبید ملمای اخباری رو شیم چون اینها به استداقی مقداری مخصوصان حملات تونگی علایه و جه خبر مفرح و وجه کلام اینها رو به اصطلاح. هست کنم که حالا نتیجه اینها این که آیا این اخباری ها خصوصاً از بحث خارجیان یا معترضان به حجیت تنبدی به خصوص این کتب بکیده ذکر کردم اینا اصرارشون به اینه که خصوص این کتبی که روایاتی مازلیم در کتب مشهوره خصوص اینها بر وجه صحیحی ندارد ندارن بحثم نمیکنه اونجوری بحثش رو حمل کرده. از عباراتی خوندیون جلود عبارات مرحوم شیخ صدوق بود این کتاب خود بسائب میکنیم در عوائل کتاب حدایب در خود حدایب مدنی کتاب چیار در, در این جهر که عوائل بخصای ترکی مثل حدایب شمون مصفلن جدالگانه لیکن خب آده یکیشون رو یا آن خودشون با مراکعه شوشن میشی از در اینکیشون امبارنسی بود از مردم شیخ صدوق بودن مش در اوعمل کتاب میفرمایم سفری فرید نه میکان قصدی قصد در مصندفیم گیرات جمعی ما روا هم رو در شده ر هم ز شده یاگو هم ظر شده که اون سعیع کرده سیره تشی با کردیم بر قصد و لاگیرات ما افتسیل و اشکن به صحته معمه صاحب و وسائل از این عبارت این رو تخمین زنند که مصنفات اونها جوامع مصنف بودن این صحیح و غیر صحیح داره یعنی در مصنفات ملزمه نیستن که انسان خصوصی روات صحیح رو بیاره بلکه هر ثغامی این ظاهر عبارت مرحوم شیخ صدوق از اون طرف خوب سال و ساله مخبت همه مصنفات ها هم سعی کردن توجیه بکنن سال و صاحب. عبارت صدوق رو توجیه بکنه دیروز عبارتش شو خوندیم ایشون توجیهاتی که داره مثلا که از توجیهات اینه که لعن غیر صدوق اورد اون جمعی امارو. چه معارض چه اماره ولایو نافیداله که ثبوت از پرک المرجوع وجود معارض معنیش این نیست که اون صادر نشده حتی مرجوع یعنی اشون مخاطبه در مصنبار اون چی در مصنبار بوده بار هم صادر شده یا یک توجیم دیگر ایشون میکنه یراد انهم قصد و اداره ایراد جمعی معارض لیکن انهم به زرکه خون معارض هم مرونه به نمخاطب معارض باشه اونی که عملوشه میکنن تربیلیت میکنن یا تربیل میک بعدم ایشون میگه که و یکی این یکون از عراض و مصنفی اهم من اصطفات الگین کتب همون تبده مراد اصطفات اهم من اصطفات اقیقی زراد من ارز چون از اینجا به بعد اصولاً در شرع کلمات اخباری ما بحث حجیت خبر رو تقریبا به نحوه قدیه خارجیه بررسید میکنم در بحث اصولی به نحوه قدیه قدیه خبر مجردیانم هر مال ما کردم نحویه محس رو بردن بود قضیه خارجیه این بزن کتاب سر و اتفاق رو کلیه می کنیم کتاب ها کردن گفتن این ها رو ما باشه حمل می کنیم سیقت فرمیدیم لذا برای شرح امورات مرحوم صاحب و صاحب. یا نه بزنی که برایشان غالب می شه خود بردن فیلن مجبور بوشیم که به نحویه قضیه خارجیه بحث بکنیم حالت مثلا بگید چطور که خصوصیات و مسادی رو میشه به بحث کمروی چون مهنده بحث آیان اینطوره ما هم در همین هم وحبه هم یا که انگیقون اراده مسندفین اهم نصبه ها این مطلبی که ایشون اکشار باشون درستیه حالا ایشون از کردن صادقه ما مثلا کتابی مثل کچوب حسوسین سری داریم مرو مسی سرید سی که آب نوشته در ووا سر. این سی کتاب مشغول بوده که خد مسین سری سر بود کتابش بوده. بوده کتاب کتابش مشه بوده، عنوانش هم مشغول بوده معرو در کاتوب ساسسی سر مشین بود در کچوب ساسه و این در کچوب ساسین تو م رو حسوس سریید نوشته، در حقیقت در ادواب خیل هست آن اصطلاق برده این اصطلاقشون در برده توی خط اعتدار یه تقسیم برده که من در اقوارات میکنی خط اعتدار خط این دو خط رو جدا میکنی. مثلا زورایه و محمد ابن موسیزم و مثلا فیلم آورد و سیمسایی از خط اعتداره و از مثلا مفضل از نومر و محمد ابن سمان و سهل از نوزیان و که ما من این شاهده سوزیادش هم درشت داره بحثون داره بحث نفره فرمی اقاضی همراه با خط اعتدار تقریباً خط غروب هم سعی کرده کتاب داشته باشه این در خیلی مهمه مثلا اگر حسین و سلید چی کتاب داشت پس این مثلا محمد نقوهنی بخوری که ما در با این که در قوم تم بودند به ادهی رو شدن در کرار کردن تله هاشو بودند بیدنم بیشتر مشهور نماز دست میگذاشن آقای توستری هم نه که معنی بوله و از نماز مقاوزم خوندن بوده حالا این شما در شدار رخص اصابه من روش اشاراتی کردیم و آمیندن بیشتر بگیرونیم محمدت از این اون رو من دسته و سمسه ای اَحیشون ماده، مراد و سعب و سعب اینه. و به این مثلا کتاب حسین مقبوله، صادر شده. کتاب محمد ابن که از خط غروبه. از تآفه، این هم صادق میزه. یعنی توجیه سومی که ایشان ما سال به و سازه سه تا توجیه برای عبارات صادر انجام دادن حالا چون بعدیم روی یعنی اساس این می‌کنیم اصلا که این مبنایی که ایشون فراهم انصافا سه توجیه که فراهم کردن خلاف ظاهره و قابل اعون نیست نمی شود باور کردن توجیه که فراهم اصلا که نه اونطور بوده که اگر کتب مشروعه یا مصنفات محروطه باشه حتما بهش عمل بکنن نه اونطور بوده که اگر از کتب غیر معروفه و ضعاق باشه حتما ترش بکنن چون از کتب رمازات از یک کتاب از یک شخص کنیست محمد کتاب داره و از توش عقادی ضعیفه داره با که خب این معناش نیست که کل کتاب ضعیفه در محمد محمد نبورمی تصادفا من کراهان ارز کنم به طور کلی اما واسه فهرستی به شناخت کتب انصافاً مرمون نجاشی به طور کلی خیلی خمیی کرد تا شده توزی. به طور کلی حدوث نجاشی به جا ندرشت اگر از جا ندرشت خب واقعا یک سربت بزرگی درست مفرسی درود نجاشی فقط فهرست دارد خم فهرست دارن به جا در فضایی فقرستی و راجع به کتب کلمات مرمومه مجاشی به جهات مختلف یاد شمیش اینجا نیست یه مناسبه بیش از کرد کلمات در مقدم. اما بعضی که نادر کلمات شیف در فقرست بهتر مجاشی برای جهات برقیس شیف اینگه هم که اسمش بردن، چیست میگه مثلا محمد نورانه رونه تا این در غلوب رو نجاشیم داده بعد میگه افرانی به کتبی فلان هر فلان الا ماکان فیها من غلوب و تخلیب ببینید حتی تو خود اجازه احادیث زدیر به کتاب رو استثمی کردن تو خود ای که داده اون خستانی که بهشان اجازه داده الا ماکان فیها من غلوب و تخلیب یعنی حتی اجازهش هم نمیزن چه برای تو برمان پس برمون میشه که به کتاب جناب آقای محمد بن قرومه با که عمل نمیکندم اما معضاله قدش قابل عمل بود حالا شباده شواهد حتمان رید ریدن یکی یکی محمد شباده یه بحث رویم اصلا محضورتون که مرموم شیخ صدو معیاب رو در اصول آنسان نفاف گرفت اصل سرگم اصطلاح اصول در میان اهل سنت هم متعارفه قبل از ما هم متعارفه و ما یه احتمال دیمون جرین جرین بعدی از مواردی که شیخ تبدیر به حمسی کرده همون اصطلاح اصطلاح قصورت شما اصطلاح ما بیش شکر بگرده خیلی در این در توضیحات دارم و بعد انا اشاره اجماله بی کنم اصطلاح قصور در احل سنت عبارت از های اصلی بوده که یک شخص پیش و استاد میرفته از اون طرف می کرده. مثلا همهار و همهار هزار تا استاد رو کرده. وقتی میرفته پیش استاد، مثلا نوز در یک نفر پنج هزار حدیز نوشید سه هزار حدیز در هزار نفر, در نفر درشد بعد از در اینکه این آره میکنش میامد تنگید میکرد دررسی میکرد مقالیسه میکرد اشتان دیگر نگاه میکرد جمع و میکرد ممکن بود از این پنجزار حدیث دویست دا در کتابش بیاده و اون نوشتار اولیه هر. حقی اصل اون نوشتار اولیه بود برشن شد مثلا بگفتن تو از این آقای چی شنیدی میگم من 5 حدیث شنیدن شنیدم. در جلیده نه اصل حقی در این برنام برشن شد کنه در اصطلاح حقیه اون چهتا در اولی بوده امیشه یه مردانی شبیه ما هست اما این دقیقا مال ما نیست برد از موارد ما احتمالا اینجوری باشه حالا که یک یه نقطه یه سه شهر میداره بخوام توضیح شده چه بیشوری میکشه و از وحث خیلی خود خارج میشه کلمه یه حرفی بین احل سنن از همون قرآن های اواخر دوم، دو سروم اینا ساده به سای سه شده مثلا اصول و د لا هو اصول این بود بعد میان در حک اسلام میکردن از این مجموعه مقدار انتخاب میکردن از اون دیگه پس از انتخاب از اون هم باز یک درجه, درجه دو قبول تا درجه قبول باز یک درجه سه بقی هم طرح میکردن حال من نمیخوام این مراتب داره یک نواس نبوده کارا مثلا ما تصور بودم تا حدیثی از اصطاق شدید در کتاب شیعه کلمه ارزی در میان اصحاب ما روشن روشن نیست که دقیقا به چه معنا به کار شده اولا تنس کردن که دارن ما حاکیف کلمه ارزی رو خود معلق کتاب نداشته خوده بکر مثلا حریزه بن عبدالله سجستانی کتاب اونها من عقل نوشته بخشه نه همی کار نگرده حریزه عبدالله کتاب سلاح نوشته کتاب زکات نوشته اصحاب بندها گفتن کتاب سلاحیم شان عقله خوب بوده رو در قدر دارم کلمه یه حصول استلامی نیست که لفظی نیست که خود معذف کتاب گذاشته بخشه حالا چرا گذاشتم؟ چه نقطه ای بوده؟ اصلا مشروطه این نقطه اینه که کتاب هایی که مستقیم از امام گرفته شده اون دسته اول ها. یا مستقیم از امام یا اگر به باستم گرفته شده دسته اوله مثل کتاب سلافه همید چیزا اینگرم گفته شده من شون این برس جزاگانه مفرق گرم میشه تو برسایی خبر الواقع توضیحی بیشه من فاید این رو ارز کردم ما از سال تقریبا دیویست دیویست این اصطلاح رو می‌بینیم. این اصطلاح رو این اصطلاح من به ترچیبتون بعض دفعه می میکنم این ما قبل از دیویست هم میبینیم رو یه رو به رسول قبل از امام سادر شدی چون حریز کوفی بوده 30 سالی باشه این از 30 کوفی بوده میرم در سیستان برای تجارت با از چیه ای بودن اینجا اونجا شروع به عمل مسلمانان، حده از خوالشو می حدود و دو سیزدر می, می کی خوالشو می ما کم میشه مبینه این نهاواز با دوستانه چون بیشارا شب در مسته دو در, در شیعه ها من همه حریز مسته دوستان اینا خرار ب این کار در زمان امام صادق انجام جامعه رفته درمی این که من میگم از ساله ظاهرا از سال به بهشه عرض گفتم. گفتن این دردها عرض شدن تو چون مرمون ساله از ساله اینه ما این عبارت رو میخونیم اولین کسی که کلمه اصول از رو به کار برده چند بار ابن شد در معالمه اینو نام فرارش شیخ مفید الان در انصار شیخ مفید نیست این در دیگه داروال شیخ مفید کس دیگه هم ایرادشون از شیخ مفید نقل نکرده اون چه ما از شیخ مفید که اخیرا چند سال پیش کنفرانس رو تو کنفرانسی بود کنفرانس روز آثار فروکلت رو فاق کردن در هیچ جایی از کتب شیخ مفید این مطلب نیامده خود دقت هیچ کس دیگه از الا ابن شهراشو رحمه الله که ما ایشون نوشته که اصحاب ما از اهدرمی رو تا اهدرمه چهارسن کتاب نوشتن که اصول اول برگیم هست ببینید دقیقاته من که میگم سال دیوی سن زمان از ممکن است کتاب در زمان از تحمیر نوشته باشه ما اصول از زمان از حالا ممکنه فقط این کتاب در ممی از باشه. اما زباده نشون میده تعبیر از اونها به اصل مال سالهای دیگیس به رده من اشتباه نشه شما ممکنه یکی توی میساز که خواهی هستی از دیگیس به شبتن اصل قبوله میدونم اما ظاهرن این تعبیر اصل اصل مال معلوم که نیمز مال بعد تا خوشه که ما میدونیم قدیم تلیم کسی که به عنوان اجازه یه حصول را مصن اجازه رواید در گصور که اجازه داده در این ترین شخص احمد ابن هلال عربتاییه ما قبلیشون نداریم ایشون ترونه در اون زمان ارزا بزا مثلا 245 دیگه ایشون مرد محمد بوده 267 یا 68 شاخاتش و خیلی از کتب رو نرمی کرده از مصنفات هم نرمی کرده این اصطلاح و و مصنفات یک شرک اجمالی هم نرمی کرده ممکن از که اصول ما بیس کلمه داشتیم یک کلمه شهرانگیم یک تردیجه در رو چون یک جدیجه میشه چند آسه ایسکولانیه پس کلمه عطی در اصطلاح ما از زمان صاحبه از زمان نسان از رضا زابه بند شروع شده چی مهیار بوده ها در صحبت هاش بند ظاهرن کلمه مصنفات در مواقعه او عبارت از این بوده نه. به اصطلاح من اسمش روشن درجه دو یا متوسط کسانی بودند که از اون تعریفات درجه یک انتخاب کردن و جنبتی کردن موضوع برد میکردن کتاب نوشتن این اصطلاح هست اسمش مصند زارن این جوره. مثلا همینجا گیروسی خوندی مرحوم حسین ابن سعید اسمش برده شد کتاب و رحمه سرد اسمش این هم مصندف کتاب رحمه سرد نبدالله پس مثل کتاب حلی مصنف اینطور نبوده که در یک با مثلا برگیشان ما مصنف بودی در صلاته خود کتاب حلیف فی صلاته اما مصنف نبوده هم کتاب معاییت نعمال فی صلاته اما عرض بوده مصنف نبوده چون معاییت نعمال مستقیم از امام صادق میگرفته کتاب رو نشون ساده همچ از سر اینجا اصول ما و این کتاب خیلی هم انگش داشته هنوز هم داره ولیکن بعدها حسین سعیل باید کتاب صلاح نوشته در این کتاب صلاح از روایات مثلا کتاب حماد عورده از روایات کتاب حریض از روایات دیگران عورده روایات عمر بن زینی عورده حماد بن عثمان عورده خیلی روایات متعدد دیگری هم اضافه کرده این کتب حسیل مستقیبش مصنف می این فراویی حسیل مصنف مصنف اون نیست که برای ازیم مثلا کتاب ساد کتاب مصنف کتاب ساد حریب هم نسیم داره اون مصنف نیست اصله کتاب رهنچ محاییات نعمار هم هنچه به اصطلاح مصنف نیست به سای اصله نشون میده. از زمان حضرت رضا اصطلاح اصول در مقابل موسنفه ها دین اصحاب ما را آف اون دفت بکنی و دوازه نشون میده که ما خود من تا یک مدهی فتا ها کنوال کار بغدادی ها روشن نه قومی ها میدارن فهم ممیدونم این مطلب که قبول شد اصول ها موسنفه ها قومی ها هم داشتن بغدادی ها هم داشتن قومی ها که یود عبارت برگومه شیخ صدوق رو خوندون دیروز درستی بردادی که زیاد نواجمیه رسول و مصنفه ها من شیخ چیزی هم باید دیمونم پس خود درقت کنیم ما اصطلاح رسول و مصنفه رو داریم. پس مثلا الان این تقسیم بندی که ایشون داره بیشون میگه که کتاب حریز ابن عبدالله سیستانی این که دو حالا الان من تطویح بکنم کنم کتاب عبدالله ابن علی یک علمی ا احتمال داره مصنف باشد یک شمید داره که چون کسی تالا مفرض نشده من این موحا مفرض و کتب علی ابن محضی ها را هموازی این روزو مصنفاته و کتب حسین سعیل این هم مصنفاته و نوادر احمدر و محمدر نیسا این هم روزو مصنفاته و کتاب و رحمه صدر نعبدالله من چند بار توزیم این کتاب پنج با بوده و سوالات و موارد امصاح محدوده یعنی این کتاب تمام ابوابش رو نداشته پنج باب بود جامع شیخ نای ابن الوری این به ذوی مصنفات حالا شاید امروز که متعارف بشه احتمال داره اگه وقت کنه نواظر ابن عبی عمر نواظر نوری در یک بلغت ما بین اصول و صنفات چون این نرمی اومد در این کتابش از مسادر اولی گرفته بعضی خود از سوالی شد چون ازراد که در مستفی جعفر و حضر ازرادون یه برزخه دین همه محاسن برقی که جز مسنفاته رسالت و عدی علی این دیگه از مسنفات هم خالده این فطح منصوصه این رساله که الانگارگاییشون نامه و قال عبی مطون روایات نیست حیرت ففح همه متون روایات ر یعنی روایات هیچ س در بند و که فکرشتون روایت این برای شما روشن کردن گفت جمع و و غیر ها در خصول مستندات و هر چه سال و سا چیه هر چه سال بر سا که این اصول و صندات هم همه صادر شده، تمام این هست آیا این هر همه برماریه آیا ما میتونیم قبول کنیم مقدر را انصاف رضیه خیلی مشکل حالا ایشون توگیر پرمودن اما انصافا خیلی مشکلی. یکیش مثلا کتاب و وحنه سرده ایشون پرسیدن خب واقعا خود من هم همه هنوز ده پرمودن مثلا مرموم الله نردالله استاد کولینیس از ایشان نرو بکنه مرموم کولینی اما در پنجه فرو یک روایه در سرده نردالله نداره هیچ بله امکنه این روای دکتار سردن عبدالله مثلا به حلبی برگرد که کلینی از دیگری از حلبی باشد داره اینگاه اینطوری داره اما از خود سردن عبدالله حتی یک حدیث نقل کرده خب هیچ چی خواهر ما مالی میفرمیم ایشون اصرار دارن که اینا بقایی بوده و کتاب رحمه ایشونم هم شیخ چشه گاهی داره اما اونی که ما الان زیاد داریم هر جا سرم که کتور ما دیدیم صدر نمدالله حدود نبت در صدر شمال مرموم شکه توسی. اگر از اسم صدوق هست به اونان صورت مشیقه اسم شه چون نیدم چیزی اونطور که من در حافظم خراب چیزی حدود چهارستد خ خوده این مرموم صدوق تو مشیخه داره چهار ساز و بیس مورد مو دو زنوار اگه اکراری یا اقامه ها شد او همین مورد در سر شد یعنی یک به طب کتب در حوالی دیگه در کتاب فقیم خورده من اجازه در جزی یاد وارد میشم آگه حواسن هست از بحث اصول خارج شویم؟ دفت میفهمیم اما که کله مرهوم شیخ توسی در همین پنج با می کرده در قیلش داره کمه ولی می از کجا آورده در این پنج کتابی که خودش که توصیف توسیف میکنه و مرهوم نجاشی هم توسیف میکنه کتاب رفنه رو بیشترین عدد روش شیخ توسیف آورده اصلا آباده دیاره کلی کتاب و از این موادی گفت شیخ توسی اگره چیزی ندید یه هشتا درستهاش معمول موهان ایت شاد در نزدیک هشتاد درسته اده شد شیخ توسی خود دورده عمل بسی نگرده چی توجیع کرد اصلا بریدیم به پاکنسان ما همه هر بکنن از یه حضور از هسته هم آنفاسی داره از خیلی هم این به این داره پنج تا اوالیت داره که برسیان سریع کلا این پنجدار که تا با رحمه در در هیچ جایی نیست اتو چه هشون رایی کنه این پنجدار شهر تلسی اوزه منونو کلن میشه بر رویه انده ای اوزه همه قادی ها از پرداره هم کلن نگورده شهر تلسی هم که اوزه توجیه کرده مراد از با سرکتی ها حالا از توساستم مطلب یه دانه روایه دیگه هم از کتاب نمازه رو نیکیمه از کتاب سعد نفضلله پشت و حدیث خیلی عجیبه این واقعا به ذهن میاد من احتمال میرم آیون اتبارگاه ها رو اون شدت به اصطلاح احتمالشون به کتاب مسترشناسی رو کردن قصالین رو بررسی نمیکنن. خب نمیشه یک مطلبی رو پنج تا سند داشته باشه در کتاب رحمه سعد نفضلله فتوه هم بر اون نیست مشکور از فتوه های در اون احراز کردن اون آقای خویان می کننش احراز رو کنستن احراز اونها بودن نه اگر شیف توسی نبود خوب دقت قسم چی محاملن اگر شیخ توصی در قرنان پنجم نبود ما نمی روایتی داریم که هم توصی مجیدیتی و سوص با شون کلینی که نه موردونم دوستان رو بودیه که ازش نده شیخ صدورم که نه مورده فتواشم در کتب نه اگر شیخ توزی نبود ما ازن خبر نداشتیم اگر شیخ توزی نبود ما اصلا خبر نداشتیم که این معلیه و مصابقه بودن ای حضور از آن در خود یا انقام نبود به نظر من سال و سایه از دور مجموعه تاریخ رو که ما حساب نمی کنم چطور که محلوی ثابت باشه در قرن دوم از امام سادر سادر شده باشه و اصحاب ما قرن چهارون کلن نیارن بره و تو کتاب حسین سایی نباشه تو کتاب های مشغول نباشه محضرن در کتاب سعد باشه من هم داره قرن پنجام محوم شیخ توسی تازه شیخ توسی هم توجیه کرده گفته مراد از خاص مثل جنابته یعنی همونم هم ک اون اول اولین کسی هم که آورده اون هم عمل نه مشکل احوال یا اینه یعنی مشکل احوال یا اینه که اون در کجای برنامه تمون حالا این مصدر شیعه ابزار تاریخش کجاست ما عرض شد در 10 شورای روایت داریم خب که هر مشرد میشن آمره مشرد میشن که در حال احرام زیر سایه حرکت نکنند، مثلا زیر نباشه چه از خب ما حضوشان جهتا روایت داریم بعد سنه مختلف در مقابل اونها یک دو دار روایت داریم که امیون موسین اشفاد دارم یک دو ساید با ششتان یه دونه اونها مال صدر مبدالله ما در مقابل اون همه روایت یک دانه روایت داریم امسان رواتا ما ساستکن توجیهش رو کنم اونها منحسر به صدر مبدالله خب این چیجور بود؟ خب اصدی همه رحمه صدران عبدالله اینجا بود دیگه نیم جز اصول و مصنفا چه فکر میکنیم؟ دیگه همه با این قصر شده در حال بحث داردن توضیحاتو بیشتر جمیدن من فقط میکنم و این تحجیباور شد براتون باشه لازم نیست در مسئله تعارض باشه شباب نشان ما در باب خمسی یه گرواز واضحی داریم کشه که توسی اورده باشه، شخص صدوق هم اورده باشه، اما با سر شیعه توسی اورده است، سر عبداللہ، زمینی رو که مسلمان از زمین نخره، خمشه واز بده، خمشه واز بده. اداره طور عملیه امام از دیگه، ارزان اشتراک زمین مستأمن، رسل زمین مستأمن. این فقط یک دانه روایت است، اونم منحصر به سر عبداللہ، هیچ دیگه هم نقل نکرده. یک دانه روایت منحصره به سعده نبدالله حالا از این روایت هستان شانس و که مشکول شده فتواب داده به سعده تو کتب هم اون روایت به لازم هم مشکل داره یه خواهد شما به لازم مشکل داره چون نمه بحث بحثتش دروشن اون به لازم محطنی هم مشکل داره مثل یه تاریخیست داره یعنی حصول از از از حال متحصر ملتقه سورن سرکر جواب بدن یه مسئله مالیاتی خاصی بوده نظام مالیاتی بوده که من نظام مالیاتی در این از یک زمین های اوش در یک زمین دو اوش میگرفتن که دو اوش میشه خمس دو یک دمام میشه دو دمام که میشه یک پنجم حالا من بازمون بخص نمیم باشه احتمال هم داره که این آسال فرمانه جا روشه بدم چاید سعده نبدالله هدمش این بوده که در هر روایات معارض رو روای از باب اخلاق قاومتی رحمت شاید نظرم برای که شانید حالا یه و این که چرا حالا سرد نبدلا ممسلا به این شدوز بالا شده چون خوب دقت کنم من که این محضر را گفتم خوب دقت بکنید این یه نمتیری سه ورزه تحمل نکردم مرمون سرو کتاب سرد نبدلا از استادش ابن الولید شمیده صد خیلی محتقه به ابن الولید راستم از من در در کتاب من لای احضار در باب صلاح لیلت و قدید میکنه که من هر چیره که استادم ابن الولید تصریح کرد صحیح میدونم و اون چیرم که گفت صحیح نیز من صحیح, نیز من صحیح نیزم زفر این ترلیم رو گفتنم کشتباه نشد کل ما صححه و استادنا ابن الولید شیخونان و هر چیرم که ایشون نکرد تصریح نداره. اون تعمال به این نقطه فیلی چید مثلا همین روایات مال ایوزن هت هم در قص آبا فرصم که نیموده شادیه در سر نمضی از این که صدوق هم نیموده مردم میشه نه صدوق اونها اون داشته نه ابنولولی ایگه انجیه ابنولولی در که شادیه در سر نمضی داره اینا مساله جیسی گفته نه که در فحالا خدا آنه اخباری ها می دارن در نه درمه اگه این نکته ای که آن را حرف هیچ کسی متفقش نشده که این ربایی ها که ای اوزون از فرن نخواست فرنید نیست کنه و زیاد داریم آره من نمیخوام بارد اون بحثیت رو زیاد بشم زیاد داریم موارد این طوری باید که این کتاب رسد و ازم برده عمله حالا بقیهش هم همیز رایی باید که بخ من اشاراتی رو عرض می کنم یه نصیب مونده خیلی از گرم در پنج جلد فرور هیچ حدیثی در مثلا محکم داره تخلیص شده که مثلا کلیمی فرو جلد من سه چهار صفحه کنم این چهار مورد حدیث در کتاب روزکات کلیمی آمده و اچان میرم کتابان تخلیصیاتش رو میذاره و به طلبه ها این چهار ذره در این نسخه ای کتاب شده توی یه بهترین کنار دیدار کشورش بوده شده. شده ها کنار پیونس هتل ساتوانی. چون که داره کلی نسخه موثر داده شده. در این نسخه این چهار نهادی تو سرده نامزد لطفا قطعات آمده که استاد دل خاطرش که اشغال کرد به کافی نسده. نه اما کافی نیست ثبت می‌شی نسخه ضبط نیم. من این توضیح برای موجام و یا ضرر موجام نگاه کنم. خیال کنند که مثلا مطلب که توجه پس هم پس من این این مطلب این من یه مختصرش چه گفتم هم رو اصول صحبت داره هم رو مصنفات صحبت داره چون آه افتگاری ها خیلی رو کلمه و حسول به اصطلاح مهامان رو دادن من در کلال بحث‌های توضیحات عرض می کنم مرگون شیخ کلیشون مهدنه یا دیباچه کلیشون رو هم آوردن. بعد مرمومه کلینی، حالا مخاطبش هم نمیدونی کیه نبیشن که معلوم رو کتاب مقدمه رو بشی خطاب کرد چون داره قطعه این روی آخی من اصطلاح اهل دفع نهایدان جهاره این شکایدی اون اخی ایشان مراسیه برما الان واضحی و ذکرت انو امورم از اشکلت علیک از کلیم با به افعاد هست لیکن به سیغیر معلوم بخونی این مجبور ندار این هست و حالا همه مشکلت بعد دو مشکلت میخونی انه امورم قد لا تعرف و حقارقا الا انها و قلت انه يكون انه يجمع علم این تو توهب ورگی کونه این کتابون کافی یجمعون جمعون علم دین این یجمعون جمعون علم دین شبیه کتاب بخاریه اونم الجامع و صحیحه لیکن ارد کردن کتاب جامع نیست مثل کتاب بخاری و مسلم جامع نیست نوشته ایشون بناده چه بعد اضافه بکنه بلو. جامع نیست نه ما یکتب ای بی علم متعلم و یک جایلی مستشد و یک خلقه من هم من یورید و علم الدین و لعمل به بعد دقیق کنید بله آثار صحیح تحن سادقین علیه عده از علما به ادراز مختلف اینه عبارت دیباجه رو اوزن. مثلا اخباری ها که این معنات جمیع ما کافی صحیح ها شون آثار صحیح هسته هم اصلا هم این عبارت این که که صحیح یعنی ما در عدامه تو زمان کافی هم آمده آثار اصلا بین که اولا در آثار صحیح در عبارت کافی قیره که عبارت عرض کردی و. صحیح در اصطلاح اونا به اصطلاح هجر اونی که محیموله قرآنه و شواله کافی باشه برای عمله بود این راجع به این باره الا آفری بعد ایشو هم بیاد بیا آثار صحیح معناشی در این اصطلاحی وقتی که مازوان بعد از در درست پسید مرمون صاحبت سازد صاحب صاحب تا علمه همه کلمافی صحیح همون به اصطلاح خودمان به معنای از ثابت ان المعصوم به قرار و لیکن این نیست این به معنی سبوت داره که ان المعصوم به قرار نو پکی تواصل حالا مخاطر ثابت باشد و یعنی ایشون مخاطر که من که یعنی من که قطعا امام معصومه ما یا متواتره یا از ساله داریم اولا از قیلات قواتو این نیست مراد مرموم کولینی اشتباه شده این لاجه به عبارت بعدی که ایشون از کتاب کافی اونده این که مرموم کولینی معتقده به سرحت کتاب کتابی ظالمن جوی بحث نباشه اما این که به کل ماخر کتاب موجود اون ظاهرن محل اشکاله اولا روزه و کت و خیلی امادیس متفرده و که اغلب بعضی از اسانیدش عجول و رسن متونش عجوله ظاهرش واضحه مثل کچل ماننده البته اما در خود اصول و فروع در دو این دورانی که هم متعارف کلی که گاهی مثلا 20 تا 30 تا 40 تا باب میاره در معانی مختلف و احکام مختلف بعضی که باب ونوادر که در این باب ونوادر احادیسی میاره که مناسب با احکام قبلیه کاملا واضحه که ایشون احادیسی رو که محل اشکاله تو باب نوازه میاد. میاره و من این رو توضیح دادم زیاد یاد جاش میده نیست اینشان رو میمتون بحثات رو شد. یه اصطلاحی بود در اون که از کتب مثلا بعد از این که احادیس محتمل رو بیارن نوازه رو بیارن مثلا در فقیه هست اما چمعه مثلا آخر طلاق با نوازه رو طلاق نوازه رو نه. در تحضیب استثار نیست، در کافی هست در اصناع احبابه مثلا بیستا بافتیک آقا باف تو اصول هم داره گاهی دا بگه باگو نادر این تو یعنی. این تحضیب داره نوازر هم داره و کداران از ترلیم که کسانی که بردها مثل ساق وسائل و, و دیگر این وسائل چپلی پیگی که آمدن کتاب کافی و عوازی شوردن یا فقیق و گردن نمی این حدیث تو باب نوادره ای کاش این کار روی و هر از کردم من که من چون نمی خواهم در بحث بشن در ادهی از کتب فقیه ما هم هست نظر حدیث الان در سرائر آخرش داره باب و نوادر و آخر باب و همه الان معروف هست به باب مستطفتات سرائر لیکن اسمش در واقع نوادره ایشون در آخر مجموعی از احادیث میادیم به عنوان نوادر در کتاب مهنه هست حالا من میخوام یه واضی بحثا بشن و عرض کردیم ظاهرش این حالا قلین هم که این نوادر خیلی ارزش علمی نداره این ظاهرش و مرحوم شیخ مفید در رساله عدبیه که اسم رساله خودت صدرا گفتین شیخ مفید در این رساله وقتی یک حدیث محاسرت بکنه این حدیث رو در باب نوازه رو برده طرف که باب نوازه رو برای درجه رو برده ضعیفه. شیخ مفید اینجور تعبیر میکنه که نوازه یعنی بابی که حادیثی که قبول نداره شده برده از حالا اون رساله وقتی شیخ مفید یعنی اون برسای جیره خودش شواهد خارجی هم معیده اینه و متاسفانه در کتاب وسایل این باب نوازه کافی رو یا نوازه قبیل رو جدا نکرده ای کاش ما هم دو شاید مروردی که ما از و داریم این کار رو انجام ندادن و اگر این میشد خیلی ارزش اون حدیث بیشتر. پس این مطلبی که ایشون که تمام اینها آثار سریح هم انصاف و و مخصوصا از سریحه به معنای سبوت قدی از امام نیست، چه معنی نیست مثلا آثار فاسوری زمانی داره. مراد آثار و حکیتفل قبوله مگر اونجاهایی که خود کله میگفته خود نیست این یه دو بعدی از روایاتی رویشون دارش در اصولی در برو تو خب بزرگان رجال یا حدیث به شدت اون را حمله کردن مفصلی یعنی روایه که مفصلی از مال نهانذر نه مال حسن نمکات یا رکشی یا رکشی حدیشی یه سفر خب ابن قضایی که میگه مجهول جهبی کذب هر کی بخونه میفرمه کذب مرحوم نجاشی حمله میکنه که این موضوع درست نیست آقای قویت قسطانشون هسته مخصول بسرانه به جهاز از مخصول بسرانه نیسته که شون نمیشن مخصول قرار از این کتاب تقریبا چند سفر هست در کتاب روزی کافی آمده و نیستن هم آمده حسن نهباست خب شاید مثلا کسی ادعا بکنه که تقریبا میدونیم این لصمان جهدیه با این شباب دیکه از این روشن البته واسه خسالفان مضمونی امتداره که در شبقه ملایکه ملاکه بر امام زمان نازل میشن تو همین قباره که همین عبارت مشکولی که الان در شبقه از آقایم غالبان به و همین کتاب حسلم ده عباس جلیشی و نظام معموم مجلسی هم میخوانن ذریع کنه علم مصطلح علم در می کنم این ما این راه که اینکه امکان داره حدیث رو تعیف بکنم بله حدیث در حتی بزاره خونقل عاده ضعیفه و داری در کافیه احساس به این مورد نداره اما به هر حال با قطع نظر از این مورد که مثلا با شوازی که ما می مثلا ضعیفه به طور کلی این ثابت نیسته معموم کنه اینی جمیع روایاتی در اینه هشت شده حجت اول از ثبوت نیست د روزش محل اشکاله در اصنا عباق همون جایی که باقی نادر یا نوادر اونم محل اشکاله بعد زادرن بقیه روایات به نظر ایشان حجت بوده یه نکته خیلی مهم را جب و اصول موسیقی نفاس محاسن این روز ارز کنیده دارد به فردا تدارک میکنم اینش بلاسته سالالله علا